سوریه اعوذ من من بسم ایلیک نام الله که بخشاگنده و با رحمت است حامین این سین قاف خداوند حکیم و قدرتمند این چنین بر تو و بر پیام قبل است و وحی می‌کند آن که در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است نزدیک است که آسمان‌ها به خاطر این کار هر از فرازشان متلاشی شوند حالان که فرشتگان پیوسته تسبیح و ستایش پروردگارشان را به جای می آورند و برای ساکنان زمین طلب مغفرت می کنند بدانید که خداوند آمرزنده و با سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. کسانی که به جای خداوند تکیگاه های دیگری برمیگزینند خداوند تمامی عملکردشان را ثبت می کند و تو وکیل آنها نیستی و این چون این فسیح و گویا را بر تو وحی کردیم تا اهل امولگرا و تمام کسانی را که در اطراف آن هستند نسبت به دستاوردشان هشدار دهیم و آنها را از روزی که همه خلائق جمع خواهند شد و هیچ شکی در وجود آن نیست بیم دهی همان روزی که ادهی در بهشتند و ادهی در آتش دوزخ اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد اما هر کرا سلاح بداند مشمول رحمتش می کند حالان که ظالمان هیچ یار و یاوری نخواهند داشت آیا تکیگاه هایی بجز خداوند اختیار کردند الله ولی و تکیگاه است. اوست که مرده را زندگی میبخشد و اوست که بر هر کاری تواناست در هرچه که اختلاف کنید حکم آن نزد خداوند است. این الله پروردگار من است. بر او توکل می کنم و روی سوی او می آورم. او آفریننده آسمان آسمان‌ها و زمین است او همسرانی از جنس خودتان برایتان آفریده است همچنین جفتهایی از انعام پدید آورده است و بر شما رو تعدادتان می‌افزاید بدانید چیزی چون مثل او نیست و او شنوا و بیناست له مقاليد السماوات والارض یب سطور رزق لی من یشاه و یقدر اینهو بکل شیئن علیم کلیدهای آسمان و زمین در دست اوست، هر کرا صلاح بداند روزی فراوان میدهد یا برو تنج می دیرد. زیرا او نسبت به همه چیز آگاه است خداوند همان دینی را که به نوح سفارش کرده بود برای شما تشریع کرد و آنچه به تو وعه کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم این است که دین را به پا دارید به آن عمل کنید و در آن فرق فرقه نشدید در آن تفرقه ایجاد نکنید بدانید پذیرفتن حقایقی که مشرکان را به آن دعوت می‌کنید برایشان سخت و سنگین است و بدانید که خداوند هر را صلاح بداند برای انجام رسالت خود برمیگزیند و هر که روی سوی او کند هدایت می و آنها فرق فرقه نشدند مگر بعد از آن که آگاهی به سراغشان آمده بود و این تفرق خاطر سرکشی از حق بود و اگر قول و مهلت پروردگارت نبود که تا مدت معینی باشند در میان آنها داوری میشد شود به این سان حتی کسانی که کتاب الهی را بعد از آنها به میراث بردند در آن به شک و تردید افتادند به این سبب تو مردم را به پذیرش حق دعوت کن و در این راه استقامت ببرز همان گونه که مأمور شده ای و هرگز از خواهش های نفسانی آنها پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان دارم و دستور دارم میان شما عادلانه رفتار کنم الله پروردگار ما و شماست پس اعمال ما برای ما اعمال شما نیز برای خودتان هیچ خصومت شخصی میان ما نیست بدانید که خداوند همه ما را جمع خواهد کرد و سرنوشت‌ها به سوی او ختم شود کسانی که در مورد خدا مجادله می کنند آن هم بعد از آن که دعوت او را اجابت کردند حجتشان نزد خدا باطل و بی اساس است غضب الهی شامل حالشان شده و برایشان عذاب سختی است. این خداست که کتاب را بر اساس حق و میزان نازل کرده است و تو چه دانی شاید قیامت نزدیک باشد؟ آنها که به قیامت ایمان ندارند در مورد آن شتاب میکنند اما آنها که ایمان آوردهند پیوسته با حراست مراقبان هستند و میدانند که حق است بدانید آنان که در وجود قیامت در تردیدند در گمراهی عمیقی گرفتارند خداوند نسبت به بندگانش مهربان است هر که را بخواهد روزی میدهد و او قدرتمند و پیروز است من كان يريد حرف الآخرت نزد لهو فی حرفه و من کان یرید الدنيا دنیا منها و ما لهو فی الآخرت من نصیب هر کشت و زراعت را آخرت را بخواهد بر محصولش میافزاییم. و برکت می دهیم و هر کس فقط کشت این دنیا را بخواهد از آن به او عطا می کنیم اما دیگر در آخرت نصیبی نخواهد داشت آیا آنها معبودانی دارند که بی ازن خدا برایشان دین و آینی ترتیب دادند؟ بدانید اگر قول فضل و کرم الهی نبود کارشان تمام بود و بیشک برای ظالمان عذابی دردناک است ظالمان را میبینی که از دستاوردشان بیمناکند حالان که از همکنون در کیفر دستاوردشان گرفتارند اما کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل نیک و شایسته است در باغهای بهشتند و هرچه بخواهند در محضر پروردگارشان میاز و این همان فضل بزرگ است این است آن چیزی که خداوند به بندگانش مجد میدهد. همان کسانی که ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بگو من به خاطر انجام رسالتم از شما مزدی نمیخواهم جز دوست داشتن خیشابندان بدانید هر کس کار نیکی انجام دهد به پاداش نیکان می افضایی. زیرا خداوند آموزنده و قدرشناس است. یا میگویند که پیامبر بر خداوند درو می‌بندند. در حالی که اگر چنین بود، خداوند قلب تو را چنانچه بخواهد مهر میزد و خدا باطل را محو می‌کرد و حق را با کلماتش استوار می‌ساخت. زیرا او به آنچه در سینا میگذرد آگاهی کامل دارد. او کسیست که توبه بندگانش را میپذیرد و از بدیها در میگذرد بدانید که خداوند از عمل کردتان آگاه است. خداوند دعای اهل ایمان و عمل صالح را اجابت مینماید و از فضل و کرم خویش بر پاداش آنها می‌افزاید. حالان که کافران در عذاب سختی گرفتارند اگر خدا روزی بندگانش را بیافزاید در زمین فساد و تباهی به راه میاندازند. برای همین آنچه بخواهد به اندازه نازل میکند، زیرا او به احوال بندگانش آگاه و بیناست او کسی است که باران را بعد از آن که معیوس شدهاند نازل میکند و رحمتش را منتشر می سازند. زیرا او، سرپرستی در خور ستایش است. آفرینش آسمان ها و زمین و جنبنده های مختلفی که در آنها پراکنده است از نشانهای اوست و او هرگاه بخواهد قادر بر جمع‌آوری آنهاست. هر مصیبتی که به شما وارد شود به خاطر دستاورد خودتان است هرچند که از بسیاری در می‌گذرد. شما هرگز نمی در روی زمین از قدرت الهی فرار کنی و غیر از خداوند برای شما هیچ یار و یاوری وجود ندارد از نشانه های او کشتی است که چون کوه در آب ها روانه. اگر بخواهد باد را از حرکت باز می دارد تا کشتی ها بر روی آب از حرکت باز بماند در همه اینها برای هر سبور و شکر گذاری نشانه اگر بخواهد کشتی را به خاطر دستاورد سرنشین همش قرم اما در این حال از بسیاری گذشت می‌کند تا کسانی که در آیات و نشانه ما مجادله می بفهمند که هیچ پناهی ندارد. فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و للذين الذین آمنون وعلى ربهم يتوكلون این چیزی که به شما عطاق شده مطاع عندك زندگی دنیا اما آنچه نزد خداونده است برای اهل ایمانی که بر پروردگارشان تبکل می کنند، بهتر و پایدارتر است همان کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی ها اجتناب می کنند، و انگامی که خشمگین می شوند عفت می کنند همانانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز به پا و کارهایشان با مشورت یک دیگر حل و فصل می شود. از آنچه روزیشان کرده این دیگران را بهره‌مند می سازند. همان کسانی که وقتی ستمی بر آنها روید بیشک غلبه می آبند. بدانید که جزای بدی همانند آن بدی است اما اگر کسی عفت کند و اقدام به اصلاح نماید پاداشش بر اهده خداوند است. بدانید خداوند ظالمان را دوست ندارد بر کسی که پس از مظلوم واقع شدنش قلب نمایت ایرادی نیست بلکه ایراد بر است که به مردم ظلم می کنند و به ناحق در روی زمین سرکشی می نمایت. بدانید آنها گرفتار عذابی دردناکند اما کسی که صبر کند و عفو نماید کار او از کارهای پرارزش و بزرگ است هر کس را خداوند در گمراهی گذارد هیچ یاوری غیر از خدا نخواهد داشت و خواهی دید وقتی ظالمان عذاب الهی را مشاهده کنند میگویند آیا راهی برای بازگشت و جبران کردن وجود دارد و آنها را میبینی که در معرض آتش قرار میگیرند در حالی که از فرت ذلت و هقارت خاشند و زیرچشمی به آن نگاه میکنند و اهل ایمان گوگند زیانکاران کسانی هستند که در روز قیامت به خود و اهلشان زیان رسندند بدانید که ظالمان در عذابی جافدانی به سر میبرند آنها بجز خدا هیچ دوست و تکیگاهی ندارند تا یاریشان کنند بدانید خداوند هر کس را در گمراهی گذارد هیچ راه نجاتی نخواهد داشت دعوت پروردگارتان را اجابت کنید قبل از که روزی بیاید که از جانب خدا بازگشتی نداشته باشد در آن روز دیگر نپناهی خواهید داشت و نه مدافعی چنانچه روی برگرداندند بدان که تو را به عنوان نگهبان آنها نفرستاده ای. وظیفه تو فقط ابلاغ است. هنگامی که به انسان از رحمت خودمان بچشانی خوشحال می و هنگامی که به خاطر دستاوردش مصیبتی بر او وارد آید انسان بسیار ناسپاس است. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست هرچه بخواهد خرق می کند به بداند دختر میبخشد و به هر که صلاح بداند پسر عطا می کند. و یا هم پسر میدهد و هم دختر و هر که بداند عقیم میگرداند و او بر همه امور تواناست سزاوار هیچ انسانی نیست که خداوند با او سخن بگوید. مگر از طریق وح یا از ورای حجاب و یا به اذن خدا به واسطه رسولی آنچرا که بخواهد وحی می نماید. زیرا او بلند مرتبه و حکیم است. و این چون این روحی را از امر خود بر تو افکنده ای حالان که تو پیش از این نمیدانستی که کتاب چیست و ایمان کدام است؟ بلی ما آن را نوری قرار دادیم تا به واسطه آن هر کس از بندگانمان را که صلاح بدانیم راهنمایی نمایی کنیم. بدان که تو مردم را به سوی راه راست و درست هدایت می راه خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. بدان که همه امور به خدا باز می صراط الله الذي له ما في السماوات و ما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العلي العظيم رابس كورت خدوان دي بلند مرتبة